خب بسم الله الرحمن الرحیم التشبیح المقلوب تشبیح مقلوب کتاب اگر پیدا نیست؟ کتاب اگر میاد اگر امانت بکیریم ولی من <المان> ندارم دیگه امانت گیر میاد التشبیح المقلوب الامثله که بیاره؟ مگه بخد بخون خم. التشبيه المقلوب الأمثلة قال محمد بن وهيب الحميري شما در بحثها بايد قوائده بفهمت بل. القاعدة التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بالدعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر تشبیه مقلوب این هست که مشبه مشبهن به قرار داده بشه مشبه چه قرار داده بشه؟ مشبهن به, به. ببینید موقعی که من میگم شما مانند ما هستی شما میشه؟ مشبه. مشبه ماه میشه چی مشبه به ولی در تشبیه مقلوب ما میایم مشبه و مشبه به قرار میدیم در برعکس در تشبیه مقلوب ما میایم مشبه و چه قرار میدیم در حیل مثال خودمون به اینیهی که گفتی الان شما معنند ماه هستی شما بودی مشبه؟ مانند بله ماه بود مشبهون بله ما به مشبه بله ما میایم که مشبهه مشبهون بهش قرار میدیم میگیم ماه به معنند شماست بله مقلوبه میدون میگند اصل بر که ما اونجای که وجه شبه قوی تره اونو باد مشبهون به قرار بدیم ولی اینجا شاعر میاد برعکس میکنه مشبهو میاد مشبهن به قرار میده برعکس میکنه جاشونو به چه ادعایی؟ به ادعایی انا وجه شبه فیه اقوا و اظهر به این ادعا که وجه شبه در مشبه اویترو ظاهرتره حالا بیاید در امثله خیلی واضحی قال محمد ابن وهاب الحمیری محمد ابن وهاب حمیری گفته و بعد الصباح کانن غرتو وجه الخليفه حين یمتدح ده قد داشته باشید در این مثال میگه صبح آشکار شد گویا که روشنی صبح مانند چهره خلیفه است زمانی که ستایش کرده می شود ببینید به جای اینکه میومد اومد وجه خلیفه رو به روشنی صبح تشبیه می‌کرد اومد چیکار کرد اومد وجه خلیفه رو صبح با وجه خلیفه تشبیه بله به جای این که می اومد واجه خلیفه رو شبیه به صبح می کرد اومد چیکار کرد؟ صبح روشنی صبح شبیه کرد به واجه خلیفه مشابه رو مشابهون به قرار داد دو وقال البحتوری کان سناها بالعشی لصبحها تبسم ریسی حین یالفذ بالوعد با این ادعا که وجه شبه در مشبه قوی‌تره با این ادعا که وجه شبه در مشبه قوی‌تره در مشبه قوی‌تره آ یعنی ادعا این ادعا رو میکنه که وجه شبه که همون خلیفه است وجه خلیفه است قوی‌تره لازم یاد صبح به به وجه شبه چکار میکنه تشبیه میکنه این خیلی تشبیه آسان یا خب ما مثلا اگر اومدیم یکی رو تشبیه به خورشید کردیم این مقلوب نیست ولی اگر اومدیم خورشید و تشبیه به انسانی کردیم این میشه چی وقال البحتوری کان سناها بالعشی لصبحها تبص معیس حين يلفظ بالوعد گویا که روشنی برق از شب تا صبح بمانند تبصم ایسا هست زمانی که وعده میدهد خب. اینجا به جای این که تبصم ایسا رو تشبیه به نور برق می کرد با رعد و برق, برق؟ آه؟ این کلمه در قرآن اومده سنا برقی اومده تَمَسُّب سنا رو تبدیل به کرده به چی کرده به این تشبیح مقلوب اسم مردمیه همون چی ممدوحش شاعر و قال آخر و دیگری گفته احن لهم و ودونهم فلاتن کانن فصیحها صدر الحلیم اینجا هم میگه فریاد میزنم آنان را و پایینتر از آنها یک بیابانی هست یک فلاتی هست که گویا وسعتش به مانند سینه حلیم هست خوب اینجا به اینکه سینه در فراخی شبیه به فلات میکرد اومده فلات واسط رو شبیه به کی کرده این در وسط بله مقلوب دیگه متوجه مقلوب بودن شدید بحث ساده تشبیه مقلوب پس در مثال سوم فلات اومده تشبیه شده به سینه حلیم در وسط این هم تشبیه مقلوب بود نموزه شو حل کنید یا فهمیدید تو امثله نموزج. خب بریم توی درس بعدی که در ما رابطه با چی هست این نموزه جز مهم نیسته اگه معنی رو بلد باشی اون سویه تو فهمیده باشی دیگه فهمیدی تشبیه مقلوب چیه تشبیه مقلوب و دیگه کاملا صفه 69 فهمیدی بریم قاعده شو بفهم قرار دادن مشابه بله اینا چون با این ادعا که میگه یعنی با آقا با این تشبیهش میخواد بگه که این از اون چیه قویتره این از اون در این وجه شبه در این صفت مشترک این از اون قویتره الحقیقه والمجاز المجاز اللغوي الامثله مجاز لغوی اومدیم امثلهش ولی قبل از امثله دوازهم كتاب ييد القائد السفلي حفظتك قائد المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي لقد أشتاش تباشين مجاز لغوي لفظيتك مستعمل بشه به غیر از اون معنایی که براش وضع شده آه؟ ما به شما میگیم شیر در حالی که شیر برای چیز دیگه وضع شده موقعی که ما بگیم یا اسد اینجا معنای مجازی کار بردیم چون اسد برای معنای دیگه ای وضع شده موقعی که ما اومدیم کلمه رو لفظ رو استعمال کردیم در معنایی که برای اون معنا وضع نشده این میشه چی؟ مجاز. المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجاز اللغوي ان لفظ جيس كي استعمال شده در غير ازان چكي براي اون معنى و باز شده بخاطر بچه دلیلی لعلاقة مع قرينة معنعة من ارادة المعنى الحقيقي بيگه بخاطر علاقه كي اوجه وجود داره و وهاب جدید قرینه‌ای که اون قرینه مانع از این میشه که ما اون لفظ رو بر معنای حقیقی حمل بکنیم تو عبدسلطگی واضح میشه موقعی که من میگم خورشید من بیا اینجا خب اینجا دیگه قرینه وجود داره که اینجا خورشید منظورم همون ممدوح بود منظورم به معنای حقیقی نیست خطابش کردم بیا اینجا والالعاقه بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازی قد تكون المشابه بیگی این علاقه که ما با وجود این علاقه میایم به معنای مجازیش به کار این علاقه که بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی وجود داره گاهی موقع شباهته چون بین این و اون شباهت وجود داره لذا ما میاییم به معنای حقیقیش بکار میبریم نمیبریم و به معنای چیش بکار میبریم و قد تکونو غیرها و گاهی موقع علاقه چیز دیگه است که جلوتر در درسای بعدی میاره و تو قد تكون لفظیتن و قد تكون حالیتن قرینه همچنین گاهی موقع لفظی هست و گاهی موقع قرینه حالی هست أه؟ يعني لفظي نيست دلالة حالي, حالي هست حالا بيأي روية امسلها قال ابن العميد قال كي ابن عميد ميجي قامت تظللني من الشمس نفس أحب إليّ من نفسی قامت تظللونی و من عجبن شمسون من الشمسی اینجا دقیقت داشته باشی میگه بلند شد که مرا سایه کند از خورشید نفسی که در نزمن نز از نفس خودم محبوب تر است بلند شد که مرا سایه کند و خیلی عجیب است که خرشیدی سایه کند مرا از خورشیدی خب این شمس اول شمسون تظلیلونی من شمس این شمس اول چیه؟ این معناه مجازه متوجه شدید؟ و علاقهی که بین این شمس و اون شمس وجود داره مشابهت هست زیر این شخص چهره درخشانی داشته چهره چی داشته؟ باله بله <تصفيق> خب و اینجا قرینه وجود داره زیر شمس حقیقی نمیتونه انسان چیکار بکنه شمس بله و اینجا کلمه تذلیلولی مانع از این میشه که ما بیاییم شمسو حمله ورزی کنیم در بهانه‌ی حقیقیش بکونیم یه بله شمس اولی رو این که شمس تذلیلولی نذیک لفظی شمسون تذلیلونی بین شمسی آره دیگه اولیش مجازه شمس شمسون تذلیلونی بین شمسی شمس دوم حقیقته یعنی خورشیدی سایه کند مرا از اون خرشید حقیقی بال بله این قرینش هست خب حالا بریم مثال بعدی وقال المحتوري يصف مبارزة الفتح ابن خاقان لأسد محتوري بخاد وصف كنين مبارزة كردن فتح ابن خاقان رباشير بقفة لم أرى درغامين أصدق منكما عراكا إذن اینن الهیابت النكس النكس كذباً هزبر مشع يبغي هزبرن، او اغلب من القوم يمشي باصل الوجه اغلباً کلماتش چی نیست بکار چی ماشین جا؟ اگه ماشین کلماتش مشکل هم نبود معنیش نیست. ها الله خب این سبب میشه ادبیات, ادبیات اصلا قوی میشه نه یکی از فصوحاتی چی همی بود که کلمه اصلا باشه نه این کلمه برای عربه که اصلا اینا به داشت ما چون تو ادبیات عربی کار نمی کنیم این احساس همیشه تو وجودمون هست میگه من ندیدم درغام یعنی شیر دو شیری رو که از شما دو نفر صادق تر باشن فلم اره در غامینی اصدق من کما. ندیدم دو شیر که اصدق من کما. از شما دو نفر چی باشن؟ صادق تر باشن در حالت جنگ ازالحیابتو انکسو کذبا زمانی که انسان ترسو و انسان الزعيف این صحنه رو چیکار کردن؟ تکذیب کردن. یعنی این صحنه رو داره تایید میکنه این صحنه رو داره چیکار خب. النکسو چی میشه چی؟ انکس یعنی انسان زعیف. یعنی انسان ترسو. خوب. هزاب رونمش آیا بله. هزاب رند میگه شیریست هزاب ری به معنی شیر هزاب به معنی چی؟ شیر. میگه شیریست که داره دنبال میکنه شیری را خب اینجا شیر اول چیه؟ حقی... نه دیگه مجازه دیگه نه؟ داره وصف میکنه کی رو فتح ابن خاقان میگه حزاب رون مشایب غی حزاب رون که داره دنبال میکنه در طلب شیر هست او اغلب من القومی یا شیری از قوم یقشا باسل الوجه اغلبا که دنبال چه هست اغلب اغلب هم شیر به معنی شیره حزاب هم به معنی شیره اغلب هم به معنی چه؟ شیر هر دوتا پس اینجا اومد وصف کرد اون ممدوحش رو که شیر دنبال شیره باصل دیدیم شو ترجمه کنیم من یعنی شجاع باسل نشدید که باسل زیاد کاربرد داره اغلبا هم که همون شیره پس دقت داشته باشید موقعی که اینجا میگه حزب ال مشایب غیر و اغلب من القوم یخشا باصی الوجه اغلبا اینجا باز هم اگر دقت بکنید حزب اولی به معنی همون ممدوحشه و حزب دومی همون شیره حقیقه میگه حزب دنبال میکنه حزب رو یعنی این هم شیره این آقای کی فت ابن خاقان ولی اینجا به معنی حقیقی کار رفته یا به معنی مجازی مجازی ولی دوفوبش به معنی چه هست به معنای حقیقی هست اینجا اون ای که علاقهی که بین این تا بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داره مشابهت همون شجاعته مشابهت در چیه بله و اینجا ما از سیاق کلام این چیزو میفهمیم از چه چی چیزی پس در این حزاب رن ما شایب غی و اغلب من القوم یغسی باسل الوجه اغلب و اون اغلب دوم هم به معنی شیره معنای حقیقیه چی معنای اولیش معنای مجازیه و اغلب و شیری از قوم دنبال شیر است. يجهم من القوم قرينه لفظي اسك بما ميجي كا آغا ان اغلب اول جهست ماجو ما جاء صح بله ولجد في دومه ديگه از روی قرينه لفظي من القوم واغلب من القوم قوم س و قال المتنبی سقط مطر على دوله متنبی در حالی که باران باریده بود بر صحف دوله یه جوری میکنه لعینی کل یوم من که حظون میگه برای چشم من هر روز از تو بحره است برای چشم من هر روز از سمت تو چی هست؟ بهره هست تحير منه في أمر عجابي، حيران شد. تحيروا. در عسى نجرو ياس تتحيرنا. ولتاعي على شده مم. مثل تتنزلون دكان. تحيروا منه في أمر عجابي، حيران مشي. در أمر عجيب حمالة ذل حسامي على حسامن. وموقع ذا الصحابي على صحابي انجاب يت چه بيگه حمالة ذا الحسامي على حسامي و موقع ذ الصحابي الا و به معنی چی میگه شیری است می شیریست که بالای شیر هست و عبری که بر باران میبارد ابری که بر ابر میبارد یا بارانی که بر عبر خب اینجا حسام دوممون آقا کیه ممدون دیگه سیف و دوله هست حمالتو ذل حسامی علا حسامی اینجا میگه شباهت داره بین شیر و بین آقای سیف و دوله در چی چیزی؟ در تحمل خطرها در تحمل میگه حمالتو ذل حسامی علا حسامی در حالی که باران باریده بود بر آقای سیف و اینجوری داشت حماله همونی بنده چیه؟ شمشیره بله. میگه بر چشم من هر روز از تو بحره ایست حیران میشود از او در است که عجیبه است چشمان من میبیند شمشیری شی... را که بر شمشیر هست گفتم شیر اول یا شمشیر شیر نه حسام شمشیره شمشیر. ها. حسام این صاحب شمشیر بیاره. آره آره و با عبر رو می بارد بر چه؟ بر ابر. خب این شیر دومی معنای مجازی داره و ابر دومی هم معنای چی داره؟ مجازی منظورش از عبر دومی همون سف و که اون ابر برش میباره اون عبر برش؟ میوارم بله بله خب اینجا اگر دقت داشته باشی اینجا در این مثال در این مثال اگر دقت داشته باشی کلمه حسام دووبی البته به خاطر علاقه مشابهه به معنای چی هست؟ مجازی هست اما قرینش حالیه هست قرینش چه هست؟ از حال فهمیده میشه و همچنین کلمه صحاب دوفوی کلمه صحاب دوفوی دلالت بر کی میکنه؟ بر صیف و دوله میکنه اینجا هم علاقه هست؟ مشابهت بین صحاب و بین آقای صیف و دوله در چه چیزی؟ در کرم و در بخشش اونجا در تحمل خطرها؟ بحث شمشیر بود و اینجا در چه حسام الدین یعنی شیره شمشیره؟ دین جی تو تمیره غورخت یواز ترجمه کن الا تو ذل حسامی الا حسامی نمیچی یعنی بی بینات شمشیر را بر شمشیف بی بینات شمشیر رو بسون با حمال اون چیز رو میگن که شمشیر به مسیله اون چی میشه؟ آویزان میشه. حالا این ولی این موقف المعانی بابات قبلی این شمشیر دومی على خصوم دیگه همون مجاز درسته دیگه همون آقا یک همون آقا یک بله پس کی, کی جو فهمیدیم استاد دلالات خالیشه دیگه اذهینی که داره واسوش میکنه لفظ خاصی اینجا وجود نداره که قرینه ما باشه پس اینجا حسام دومی که به معنای مجاز هست منظورشمون آقای ممدوهش هست و صحاب دوم هم منظورش که هست محضره. همون حضرت هست آقای که داره سرفش میکنه باله سیف و دوله هست اینجا هم قرینه ما حالیه هست اینجا هم در تشبیهش بین با ابر چی بگم در مجاز در به کار رفتن کلمه ابر به معنای معجاز قرینه باز هم چه لفظی نیست بلکه حالی هست اونجا هم که حسام به معنای مجاز به کار رفته بود باز هم قرینه حالیه بود پس چشم من هر روز از تو چه داره؟ از تو بهره میبره یعنی چیزای زیبایی از تو میبینه تحیرم این هو فی عمر اجاب حیران میشه ازش در امری عجیب اون امر عجیب چیه؟ همین شمشیر بر بالای شمشیر و بارش عبر بر بالای عبر یه تحملی <تصفيق> همون نیماشه که باله اینجا قر... ببینید علاقه علاقه به خاطرش مشابهت بود علاقه چی بود چون با خاطر هم دیگه چون با هم دیگه مشابهت داشتند با توجه به علاقه مشابه اومده این کلمه رو به معنی چی بکار برده قرینه ای که به ما میگه آقا اینجا معنا معنای حقیقی نیست چیه قرینه حالیه هست قرینه چه هست؟ اون اونی چیزی که به ما میگه شما اینجا حق ندارید معنا رو به معنای حقیقی حمل کنید اونو میگن چی؟ قرینه ولی اون چیزی که سبب میشه من میام یک کلمه ای رو هر کلمه ای رو نمیشه آخر در هر معنای مجازی به کار برد یه علاقه باید بینشون باشه مثلا من به این که بگم تیم ایران باخت میتونم بگم ایران باخت و با تو چی به قرینه حال و یا مثلا قرینه علاقه جز از کل یا کل از یا سبب و مسبب و اینا بدون علاقه نمیشه اومد هر کلمه رو به هر معنای مجازی بکار برد ولی اونجا بغیر از این علاقه که من میام این کلمه رو به معنای مجاز به کار یه ای هم باشه به من بگه که آقا این کلمه اینجا به معنای حقیقی به کار و قال البحتوری و بحتوری گفته وقال المحتري إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأبالع زمانك تشم رفت زمانك تشم رفت و عین عینون علالجوا و او جاسوس هست بر جوا یعنی منظورش جوا حزن و وجد و چی رو میگن که در نفس آدمی وجود داره بحتوری در این شعر میگه ازا العین و راحت زمانی که چشم رفت و او جاسوس هست بر اسرار درون بر حزن و اندوه و عشق و مسائل دیگه که در دروناند. لذا فلیس بسر ما تو او سر او پس هیچ سری نیست آنچه که در درون انسانه بگه زمانی که این چشم جاسوسش هست پس هیچ رازی در درون انسان به عنوان راز باقی نمیبونی منظورش چه هست؟ منظورش این هست که چشم انسان زمانی که به وسیله گریه جاسوس انسان هست بر اون که در درونش هستن یعنی آقا موقعی که یک انسانی گریه میکنه انسان انسانهای دیگر از روی این گره میدونه که ضروری این انسان چه هست؟ در واقع اینجا این چشم انسان برای انسان چه شد؟ پس اینجا این به معنی چی کار رفته؟ به معنی جاسوس. به معنی چه؟ این این دو بیا اذا العین راهد و هی عین علی الجوا. و اون جاسوس هست بر اسرار درود فلیس به ما ماتو سر آذاله او بگه هیچ سر نیست که سینه اونو در خودش نگه بداره انسان اونو در درون خودش نگه بداره پس آن چرا که نفس اونو بیاد در خودش سری پوشیده نگه بداره در این حالت سری باقی نمی بونه که این اولین به معنای حقیقیش به کار رفته بله و دومی به معنای جاسوس به کار رفته پس در معنای اصلی خودش به کار نرفته اینجا ببینید چرا عین به معنی جاسوس به کار رفته جزء به کار برده اما منظورش کل بوده چون جاسوس دیگه عین داره جاسوس چشم داره یا نداره پس منظورش جز بوده ام... جز و به کار برده اما منظورش چی بوده از جزو جزو اراده ای کل میگه اطلاق جز و اراده کل اینو میگند خب علاقه که بین عین به معنای چشم و جاسوس وجود داره چیه علاقه اینجا است. هست علاقه چه هست جزئیه هست قرینه چه است؟ قرینه بگه لفظیه هست علال جواه هست علال بگه وحی عینون علال جوا و او چشم هست بر جوا؟ نه دیگه جواه بول و این چیزایی رو بگه که در درون انسانه این علل جواق قرینه هست که این این به معنای چه هست غیر حقیقی همون جاسوسه متوجه شدیم ما حسا؟ بله عبالی همون ترخیر شده کدو با؟ عبالی, عبالی نفس درون سینه وجود انسان بگه نه اینجا دقت کنید کلمه شمس هزابر اغلب حسام صحاب و این اینا آیا به بخ... معنای حقیقی به کار رفته بودن یا معنای غیر حقیقی؟ نه دیگه م... منظورمون یکی یکی از اینا اینا شونو توضیح دادی سروخت شون بله میگه اینا به معنای مجازی به کار رفتند چرا به خاطر این که اینجا بین معنای حقیقی و معنای عارض یا همون معنای مجاز وجود داره علاقه وجود داره بینش چی وجود داره پس هر یکی از این کلمات بیشون میگن چه؟ مجاز لغوی که انواع مجاز رو در درسای بعدی انشالله خواهیم خود پس اینجا ای کار اگر دقیق داشته باشید اینجا هم اضاله به معنی درورش حساب میکنیم به معنی نفس به معنی چی؟ درور معنی روانش اینجوری میکنیم زمانی که چشم رفت و او جاسوس هست بر اندوه و حزن درور فلیسه به سر ما تو سر الازاله و او پس نیست در واقع سر آنچرا که درون در خودش نگه میگارد سرش میکند آنچرا که درون در خودش سر کند؟ خلای سبی اون دیگه سرویس نیست. که چشم انسان بیاد برای انسان چی کنه؟ جا بکنه. چیز قشنگی گفت. خب ما اثاغ و فیروز باشید.